با با پیانبر گرامی اسلام دست نکنه از اونجایی که ایشون آخرین پیانبر الهی هست باید جامعه ترین کامل ترین خلق خدا باشه شریعت الهی رو و شریعت دین رو به نحوه کامل باید برای انسانها و امت آخر زمانی ارائه بده. لذا خدای متعال ایشون رو از هر جهت کامل تری حتی از جهتی چهره هم داره یه نقلی هست روایتی هست که در یه مجلسی سوال کردن از حضرت حضرت یوسف زیباتر بود یا پیامبر خاتم فرمودن که زیبایی حضرت یوسف مثال زدنیه ولی پیامبر خاتم نمکی بود نمکی تر بود سنت رسول الله و به طبع اون حضرت امی منصومین که عصیه اون حضرت هستن و جونی به حق اون حضرت هستن یکی از مهمترین منابع شریعت اسلامی چه در حوزه عقاید و باورها چه در حوزه اخلاق و رفتارها و چه در مباحث عبادی فردی و اجتماعی ما دو منبعه منبع مهم داریم یکی قرآن، یکی سنت قرآن تکلیفش خیلی روشنه یه متن پیوستهی هست ابتدا و انتحاش یه سیاق داره یه تیکست لسان قرآن اگر کسی فرا بگیره و یاد بگیره از اولین آیه قرآن که بسم الله الرحمن الرحیم سوره تا آخرین آیه سوره ناز که آخرین کلمات و حروف قرآنی هست به سیاه و یک لسان اومده لسانش واحده در قرآن در قرآن کریم مطلقات عمومات و همه دستورات کلیه دین بیان شده در بعض از دستورات دینی مثل مثلا آیات ارث. یا بعض از بحثهای دیگه قرآن تقریبا هفتاد درصد و عمده حکم شرعی رو در خودش جا داده و آیات بیان کرده لذکره مثل حتی مثلا ارث، پسر، دختر در بحث عرض ریزش رو گفته ولی در مجموعه مطالب شرعی کلیات رو فرمایش کرده عقم صلات، نماز رو به پا دارید وجوب نماز قسمت از آیه به دست میاد اما پرواتش قرآن جا نداره قرآن یک کتاب در قانون اساسی دین اسلام هست لذات به کلی اونجا بیان شده فرواتش همین مسئله نماز مثلا حدود پنی هزار مسئله داره نماز که سنت احددارشه رسول خدا و به طبع اون بزرگوار حضرات معصومین همه فروات رو مبتنی بر همین اقیم استلات اقیم استلات که در قرآن اومده به طور کلی نماز واجبه است اما نماز مقدماتش، معخراتش، جزئیاتش و همه فرواتش رو عیمه علیه به دنبال گفتار پیانبر اونها جزئیات رو پرمایش کردن این فرمایشات قانونمند جزئی رو بهش میگن سنت عمدش برمیگرده به قول پیانبر و عیمه علیه مسلم ولی ما در سنت فعل امام رو هم دارین فعل رسول الله هم دارین همین که شاید مطلبی رو پرمایش نکردن به صورت گفتاری اما در عمل یک کاری رو انجام دادن این فعلشون میشه حجت فعلشون میشه سنت میگه چرا ما باید این گونه عمل کنیم میگه برای اینکه رسول الله اینجور عمل کرد امام علیه السلام اینجور عمل کرد میگن فعل معصوم. این هم جزء سنته گاهی سکوت حضرت یه فعلی یه کاری رو مؤمنین انجام می دادن حضرت سکوت کرد رد نکرد این داله بر این هستش که اون عمل عمل شرعیه اگر غیر شرعی بود امام توضیح میداد رد می کرد اعتراض می کرد که این عمل اشتباه اینجوری عمل کنید پس قول امام رفیان برد فعل این حضرات و عملشون و سکوتشون در مقابل عمل مؤمنین اینا همه بهش سنت گفته میشه. اهل سنت سنت النبی رو قبول دارن و میگن که کنار آیات ورآن سنت النبی مورد قبوله اما سرایتش نمیدن به عیم علیه مسلم یعنی اعتقاد ندارن که سنت امیرالمومنین سنت حضرت زهرا اون افعال اقوال و تغیرات و سکوتهای چهارده معصوم سنته و دلیل هست برای دین و دینداری اما ما شیعیان میگیم هم پیامبر و هم سیزه نور پاکی که بعد از ایشون به عنوان معصومین و چهارده معصومت رهن سنتشون برای ما حجته یعنی دلیله اگر بپرسن که دلیل این عمله دلیل این رفتاره دلیل این باور و عقیدهی که داره چیه میگیم یا قرآن گفته یا پیانبر و فرزندانش گفتن که چهارده معصوم باشن این رو بهش میگن سنت اهل سنت خودشون اهل سنت می دونن. اما در عمل فقط میگن پیامبر. ما ازشون این سؤال رو میکنیم، خودشون البته این رو توضیح دادن یعنی تصریح دارن که سنت پیانبر رو ما به این نداشتیم در زمان عمر خلیفه دومه به اصطلاح به ظاهر پیانبر ممنوع شد گفتن که حسبونا کتاب الله قرآن ما رو بسه چرا؟ چرا سنت پیانور رو نگیم ننویسیم انتشار ندیم گفتن به خاطر اینکه دروغ و توش زیاده لذا اصلا بیزاریمش کنا خب دروغ و راست زیاده که اون دروگوها رو منکوب کنید اون راستگوها رو تشویق کنید ترغیب کنید پشتیوانی کنید کلش گذاشتن کنار حالا دلیلش چی بوده این دلال مشخصه براخره یکی از منصوصات نبی اکرم بیان جانشینی فصل امیر المامونین بود یکی از منصوصات همین بود که نبی اکرم در جا جای طول این رسالتشون از اون ابتدای که میخواستن اشیره خودشون رو دعوت کنن به اسلام وقتی یه آبگوشتی تحقیق کردن و داستانش معروف دیگه در مکه همه رو پرا کندن اما هاشون هاشون نه همه اومدن فرمایش کردن که من مبوض شدم به رسالت به من ایمان بیارید خندیدم مثلا این مساقی گتیم فامیل شده بزرگ ما ما همه با این شوکت رو نبنم بزرگی داریم قراره که این باشیم خندیدن و تمسخور گرفتن و نهارشون هم خوردن و رفتن حضرت در میون اونها وقتی اعلام کرد تنها کسی که جواب داد لبیکو گفت و قبول کرد رسالت حضرت و امیر المومنی سهان علیه بود ده سالیش بود خدمت حضرت بودن حضرت چند بار گفت که شما حالا مثلا بزغون اینا چی میگن سه بار حضرت اظهار کرد من به شما ایمان میارم و ایمان آورد و حضرت فرمود هر کسی که ایمان بیاره اون جانشین منه ایمان نه‌ای بود به رسالت فرقد امیرالمومنین بود از اون موقع جانشینی حضرت معلوم شد در جا, به جا فرمایش کردن خب اینم یکی از کلمات رسول خدا بود که به کرار و مرار فرمایش کرده بودند بلاخره خلیفه دوم دستور داد که سنت النبی رو مشخص کنید و بگین و بشنبین ممنوع. این ممنوعیت شروع شد تا سال خلافت ظاهری عمر ابن عبدالعزیز یعنی مربانیان و اینها دیگه روی کار اومده بودن و داشتن منقرض می شدن بن ابن عبدالعزیز از گروه مروانی بود او دستور داد که سنت نبی رو احیا کنید حالا چه سالیه بعد از سال 90 هجریه هیچ از اصحاب زنده نبودن که بگن پیامبر چه گفته چه نگفته گفتن خب زنده نیستن که اونایی که صحابی رو دیدن که زنده بهشون میگن تابعین اونایی که زنده از اونا بپرسید اونا رو نگاه کردن خیلی نیستند. گفتن حتی اگه کوچیک هم باشه سقیر هم باشه اب نداره مثل امام باغیر علیه السلام امام باغیر در زمانی که امام حسین رو و معصوم رو که امام حسین خب از صحابی رسول در قول اهل سنت به حساب میاد ولی سقیر بوده کوچیک بوده سنی نداشته یا میگه نداره از اون هم کسی بتونه نقل کنه ما میفذیریم که سنت رو نبیه امام باقیر رو به عنوان تابع قبول دارن بگه امام حسین رو دیده و از قولش میتونه هرچی بگه هرچی بگه سنت و نبیه لذا امام باقیر رو به عنوان تابعی قبول دارن و اقوالش رو نقل میکنن مکرر من حس کردم ولی امام صادق رو نه میگه امام صادق راویه چون صحابی ها رو که ندیده و یه راوی هست، مثلا راوی با تقوی و عالمیه امام کاظم میگه اونم هم همینطور، امام رضا اونم هم همینطور. اینا رو میگن راویان سنت النبی هستن و میتونن باشن. یه حفرهی خیلی بزرگی از زمان پیامبر یعنی رحلت پیامبر تا زمانی که عمر بن عبدالعزیز اومد، یه حفرهی بزرگی بین رسول خدا و اونایی که مدعی سنت النبی هستن اهل سنت افتاد. اینقدر نبود که پرش کنم بپنن از روز لذا ابو حنیفه که خب یکی از بزرگان چهار مذهب اهل سنت هست اظهار کرد که من هر چی نگاه میکنم پونزهت روایت بیشتر نیست از روایت نبوی پونزهت بیشتر نیست بقیهش دیگه صنعت نداره ساختگیه ساختگیه ها ساختگیه من طبعشم گفتن همینطوره استاد درست میگه. بلایه به سرشو وردن که تیر زرسپا مرد خیلی زدنش خود به اون مخالپین و گروه های دیگه خلیفه وقت و حاکمیت هم پشتوانشون بود وقتی واقعیت و گفت زدن کشتنش آی طلاع ازم و برو جرزی اینجور فرمایش میکنه ایشون خب در این حال که مرژه عام زمان خودشون بودن بزرگترها هنوز یادشون که مرژه عام بود بزرگتری مرژه عالم تشیع بود ایشون تحقیقات گستردهی تو این زمینه داره در حدیث شناسی، در صندت شناسی در دلالت صندت حدیث خود صندت حدیث کتابهای مفصل نوشته متاسفانه ما از کتاباش محرومین این هم یه داستانی واقعا این همه زحمت ایشون در بروجت که بوده خب مشتهد مسلم بوده ولی در بروجت کنار بوده صبح گاریچی میماده؟ در منزل کتاباشو اینها می رو میداشته رو و میرفتن یک باقشی داشتن بیرون شهر بروجت تا بعد از زور بعد از دو دور گارشی میمده برمیگشتن که نمازی بسته نماز مغربه شایی رو داشته باشن در شهر. همه این ساعت رو در طول چندین سال مطالعه و بررسی و تحقیق و نوشتن و متاسبه متن اصلی این کتاب ها دست به اصطلاح وارسی از اینشون افتاده که الان نمیذاره کسی استفاده کنه. چاپ شده ولی در یه تیراج خیلی کم با مثلا چاپ واقعا مثلا نامرغوب. هیچ کسی نیم تونه استفاده کنیم پولیش هم نداریم ما بخریم شاید مثلا نزدیک به 17 جلد کتاب بزرگی که اگه به چاپ حروپی در بیاد بیش از پنجاه کتاب میشه تحقیقات ایشون خیلی زیاده منتقا نواه ایشون هم با انقلاب چپ افتاده هم با ب... حوزه چپ افتاده <تصفيق> شیطون وقت جاپا پیدا میکنه ایشون در تحقیقاتش داره که اگر سنت و نبی هم به تعداد کمی نقل شده همون مطالبی هست که شیعه اعتقاد داره یعنی از ایمان باقیل یا نقد کردم تا به نام اهل سنت نقد کردم. تعداد زیادی از روایاتی که اونها دارن روایاتی که ما هم مضموناش یکی وقتی دقت کردن دیدن که همون روایات منقول از مثلا سید ابن مسیب و نمیدونم زهری و اینها از اصحاب امام سجاد و امام باقر اونتا برگشتن برای پول پیری زمان پیری به دروخ روایات که امام باقر فرمایش کرده یا امام سجاد از دیگران نقد کردن روشوندن به پیامبر اونها رو فقط ایشون میفرما درسته در کتابهای اهل سنت در هر صورت سنت و نبی که اینا قبول دارن متصل نیست خودشون تو تاریخ حدیث نمیسن که ما این حدود 90 سال رو نمیدونم چیکارش کنیم فاصله ای که افتاده بعد از رحلت اما ما شیعیان متصل به بزرگوارای هستیم که اینها خلیفه الله هم ایمالهم السلام خیلی الله پل ارزان خدایگان زمینن می‌دونین؟ جانشین خدام در روی زمین همه کارها دستشونه از جمله چیزهایی که کار کارن اون شریعت الهی رو اون شریعت دین خاتم رو خداوند به اینها یاد داده به اینا فرمایش کردن ما رساله هامون رو نبدنم کتاب های مون، کتاب های اخلاقیمون منتسب به کلمات عیمه علیه السلام هست که همون کلمات به سنت نبی اکرم هست خدا و انشاءالله به همه ما توفیق بده بتونیم اون منهاج رسول خدا اون روش و شیوهی که رسول خدا و اون سنتی که ایشون به وسیله عیمه علیه السلام برای ما گداشته پیروی کنیم توفیق پیدا کنیم در پناه این بزرگواران هم زندگی در دنیامون هم حشر در آخرتمون رو با اینها مشهور باشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد